و بسم الله الرحمن لله رب قسمون یعنی هر یه دامات در تنگیه و این در و این قریبه از حس رو نصاب میزنه به علم هندسه و حساب و اکثر عقاب واضح منطقی که اختلافی چندان در این بحثا ندارد ولی در اون قسمی که منتهی به قیاسی میشه که اون قیاس قرید از حس مثل حکمت و طبیعیات و علم کلامون و غالب موضوع و مسائل نظریه و خیلی از بقایدی که در منطقه هست اینها بعید از احساسه چون بعید از احساس اختلافات و منازعات زیادی بین فلاسفه و بین همه علمایستان در این موارد واقع شده و سبب اصلی شمینه که و سبب و این من در قواه در منطقه من خطا، من خطهه منجهت صورت فبط من منجهت ماده نهایی چیزی که ما در منطق خودیم اشکال عربه رو خونده دیگه که واضح ترینش, ترینش و دیگی و بهترین همه شکلی اول باشه که با این صورت اگه چیزی در قالب این صورت در بیار منتجه یک نتیجه ای علمی هست و اعلان ولی دیگه قواهد منطقی اون موارد عقیصه رو به ما یاد نمیده و اون قانون که آسم باشه از خطا نسبت به ماده ما اونو در منطق نمی و نداریم ولی سفر منطق قائدتون به ها یعلم و انه کل مادتین مخصوصت داخلتون بی اگر اسم منال اقسام و من معلوم امتناه و حالا انقدر که خب یه منطقه دیگه به نمیسم که اونم بیاد قواعد ماده باشه ماده رو ما یاد بده که چه ماده رو در کجاها به کار ببریم اینو فرموده و من معلوم امتناه و وضع قاعدت تک فلو بذاره نمیدنیم ممتنه خاطر که خاطر اینکه آرازیات قضایی بی نهایته بنابراین در هر موردی یک سلیقه خاص خودش رو داره ما یک قانون جامعه نمیتونیم چهر کنیم تا مدر ما نشون بده از ابن سینا گرفته تا معاصرین همه در اختلاف هست چه در حکمت چه در طبیعی چه در فیزیک، چه در چیمی چه در روم اعتباری با یه قانون و ما نداریم <تصفح> <تصفح> چیو؟ <تصفح> مواد در میشه مواد میشه میگن برهان باید از یقینیات سکت باشه خطابه باید از مشکلات و مقبولات و مزنونات باشه آره اینو میگن بلی من از که جا تشخیص این مسئله مشهوره یا یقینیه شاید برای یکی یقینیه برای یکی جز مقولات برای یکی جز مجنوناته اینطوری ما بانون و قاعده نداریم تشخیص هر شخصی نسبت یک قضیه فرم کن خیلی از چیزهایی برای خیلی از برای خیلی افراد دیگه جز مشکولاته هیولا رو مشاین یقین دارن جز یقینیات نه ولی اشراقین میگن این حتی هست واسه نداریم پس ما یک قانون نداریم که بیاد متکفرین و احسابشه نهایتشون هم کبراش رو میدونیم یاد ماده برهان هم و مقبولات و مضمونات ماده خطابن مخیلات ماده شعرند این رو میدونیم ولی حالا این از ملات از وحیات از یبییات از مشهورات اخلاقیه. خیلی از چیزها رو که شما های یبین یونیت به نظر دیگری جز توکوومات از اینطور چیز ما نداریم قانونی بیا بگه این غذا های مثلا یک میلیون ق یک جز توقات اون یک جز محلات اون یک جز مشهور نه آرا فرق میکنه خیلی از قضایی برا ها برای شماها، ها جوز به نظر من جوز مشکولاتی لا اصلا نه اساس نداره اصلا. پس نمیشه ما یک قانونی داشته باشیم که اون قانون یکی جوز مخیلاته یا جوز مقبولاته یا جوز یعنییاته یا جوز فکریاته ما نداری اینجا چیزیم. و نمیشه. پس تو فتایی بچی یعنی قانون ثابتی با دیگه نداریم. بیش باقیتی نداری. ب در بدیهی یاد چرا؟ اون چیزی که بدیهیه بدیهیه اون چیزی که بدیهی نیست ما نمیتونیم بهش برسیم ببین خیلی از سیزا مثل روز روشنه قبول می کنیم چیزی که مثل روز روشن نیست عقل ما به نداره مثل معاد باید متعفد میشه کمان که خود فناسه که ابن سینا ها شده میگه معاد و از رواجات باید استفاده کنیم و ملازدران گفتن که آقایی مراجعه کنن میگه اکثر الفلاسبه قصرت افکار و هم اند منازل معاد و مواقف شد. این دیگه بالاترین چیزه حالا خیلی در ذهنهاشون این هست بعضی از موارد سطحینگری هایی هست که امایی تأسفه میگه آقا شما سفر اینجوری میگی امام فلسفر سفر باید جلده بستون صفحه 165 از صحیفه امام مراجعه کنید پنبه همه کتب فلسفی رو زده به اینا رو یک مش ورق طاره میدونه من اینا نمیخوام تعبیر کنم که خوب اینا دیدم نظریات امامم دیدم نظریات دیگرانم دیدم من هیفم میاد از اینکه عمر طلبه ها تلف طلب و تباه بشه و الا برید بگم به یه سی سالی دنبال فلسفه آخرش برگرید به درست خواهی شد حالا مراجعه کنید صحیفه چلیده بیست سفره سرش از که فرموده نه از اسفار سفری حاصل شد نه از خصوصال حکم حکمتی و نه از فتوحات فتی و دیگر تعبیرات زنندهی دیگه که اینها نهایتش تریقه به معرفت اینها این خودش که معرفت نیست یعنی اصفار و ارفان و تمهید و امثال اینها یعنی معرفت بدلاکه نیست تریقه به معرفت خیلی قبول دارم خیلی قبول ندارم و این بود حالا اگر کسی بگه این حرفایی شما داری میزنی که ما در ما نمیتونیم حفظ کنیم آرام مختلفه قضایی مختلفه خیلی تو متن ها مشکل دارم و اینم باز مایه تأسفه. در ترجمه متن طلبه پای هفتون هفتم مشکل داره. به خاطر این حوزه ادبیات نداره. ادبیات در حوزه ها 20 درجه زیر صفر. ها صفر بود. کتابای ادبی نمیخونن اینا. ما مدرس ادبی نداریم. اوموغا میدونه ادبیات میخونن 5 6 تا کتاب اطرافش رابش گرفته بود. بعد برنامه‌های استرخ و شنا و چی اینا میذارن جنابش. یاد ادبیات نمیذارن در واقع خونه. شنا برن ادبیات بين خود لو فرقتی زالے بین الاعلیات و الشرعیات و, و شاهد و علا ذلك شاهد نشاهت و قنکصهت اختلافات روابعهت بین اهل الشرع در اصول دین و در فقه شما مری گفتید قاعده عقلی اختلافی خطا داره ما یا نمیتونیم بپذییم شرعیات هم اینطوره اونم این اون همه هم اختلاف مختلف و شیعه براش چی نوشتن برای, برای موارد اختلاف خودش خلاف رو شیخ توسی برای چی نوشته؟ برای اختلاف خود شیعه به معنای اعم یعنی همه موالیان همیل مومن نده ایسالا شیعه دوازده ماهی نباشن مثل اسماعی دیگه و دیگران نم این کتاب ها مثاله چیه؟ اختلاف هستیدیم این اختلافات در اینجا خوبه ولی در فلسفه بده اینو از ترابادی قائم شده بینجه این نمانشه از فلی فرق بلو رسول یه رسول دین منظر من مقدمت اقلیت باتلت من مقدمت اقلیت زنیه اول قطعیه تمام این اختلافات اینوی در فقر و, و این رسول دین و در فقر ما بروز پیدا کرده به خاطر انزمان مقدمات اقلیه است چون اون آزایین بشدن کار خراب شده و اید اگه اقلیات رو نمی آوردن اصلا اختلاف و بگه اینطوری طوری بس خود اخباری نباید اختلاف داشته باشه. پس خود اخبارینی را به جون همدیگه اختلاف دارن خود مجلسی با والدش اختلاف داره خود مقدس بهرانی با خیلی از عاظم اخبارین اختلاف داره خود اخبارینی محاصر با هم اختلاف داره پس باز همیگردن یه مبتنه عقلی نیست بلکه به خاطر عدم رعایت موازینه و مبانیه مبانی رعایت نمی کنه و قفلت و عدم استهزار خیلی از مبانی باعث اشتباه میشه یعنی تو نیست که همه چیز در ذهن فقیه باشه و بتونه استنباتش تام متزمین باشه خیلی از موارد، خیلی از تو ذهنش نیست استنبات میکنه و استنباتش منتج نیست یا مخالف دیگران در میاد به خاطر قفلت از بعضی از موانی بله حالا گفته مقدمه یافتی باطل چه با به خاطر ذننش باشه چه با خاطر, با خاطر که یک عقلیه که محدوده. مگر می باشه؟ چون اونا اینکه میگن که اصلا ما حالا اونا برای که یه مقدار تضقیقشونن دیگه. ریلداری میگن مقدمه باطل و چیزی نمیآورده در طواریش هم اینطورن. و منشن بگردن از بذاریم ایشون هم زنی رو داره میگیم عقلیات مطلبی عقل ششو زده دیگه حالا دیگه هر اون هرکسی از زن فوت شوکیار نه کوئی در خاصی که مثلا درایه اثرادی دیگه هست من فهمندری نمی وانم اون دیگه مال اثرادی بله که داستانش اثر لو اونی که این که دارن اثر عقلی رو در میکنن عباراتی نقضی ها رو قطعی, قطعی مثل چیه؟ از چیز چیز؟ مثلا چیه؟ مثلا یا نه قطعی نشه اصلا هیچ چیز بیارین شما اس به چی میگن زنده رسودی اینطوری نیست یه مقدمه ای من بگم احکام عقل تفصیلی میشه به سر اس این ها تو جزوه هم ولی از روش نکندم موقعات چه احکام اقلی سه تا مرحله دارد سه تا رتبه دارد بعضی از اونها در رتبه علل احکام مثلا خاتمیت رو رسالت رو تولید رو اینا اثبات میکنه اون یقینا اقلی قطعی مورد وفاق همه اهد ملل و مذاهیم اخباری همه خلاف یه قسم دومی داریم در لطفه سلسله معلولات احکامه یعنی این و احکام مثل سوابق قابی که عرض حکم میکنه بهش این هم باز مورده به از هیچ اختلافی درش نیست این دوتا قطعی هم این هم اختلاف در این سه که عرض در عرض کتاب سندته مثل مجوع مقدمه بازی مثل طرف مثل اجتماعان رو این داره میگن اصولی میگن اینم قطعیه خیلی هم میگن این با این که زنیه زنیه معتبره و از کلمات استرابادی هم چیزی در نمیاد نسبت به این دسمی که محله خلافه حالا استرابادی چه قاعد بشه به اینکه که عرل قطعیش چه زنیش هر کدوم باشه عقلیه در عرض کتاق سنت رو رد کرده حالا شما ما قطعیه ساکم با در عرض کتاب سنت فرموده چیزی ندار نه اونایی که رفته نه در عرض اونایی که در طول در معلولات, معلولات یعنی بعد کتاب سنت بیگه کتاب سنت روایات اومده اخباری احکام رو ثابت کرده حالا این احکام منتجزیت داره ثواب داره اقاب داره مخالفتش اقاب داره تمام احکام اقلیم که برش متدرسه میشه یا در দেই ما در دهی معلومات انكم. بعد بودم ولی فرصت نیست تا اینا توضیح بدم. حالا شما با دقت میخونید و اینا رو با تامل پیگیری کنید. اوه عقددیمون الله دین زیرش چی، دارم میگه. خدا میدونه گرفتاری نوازه میونه. خدا میدونه گرفتاری. الله تضر شیش خس عقل رو در اول شهر هر نسوره ها رو تعریف کرده. آخرش هم نگفته دین کدومش رو داره میگه؟ ما چی میدونیم آخواهیم با تشقیق و با تقسیمات و با اقسان که مشکل حل نمیشه منم والله نمیدونم از ترابادی چی بخواد بگه حالا گفته یه چیزی رفته و دیگرانم گیر دادم با از درابادی. این همه مسائل عمده اسلام مونده شیخ گیر داده بهشون در تمام کتاباش هیچ حرکی از وحابیت نداریم شیخ انصاری گیر داده به اخباری این موجب انشقاق میشه اخباریت رو بعدا اومدن ترکیفش کردن دیگه علامه مجلسی و همه خرابکاری های اونها رو درستش کرد علامه مجلسی یک اصولی مجتهد باقی با اینکه که اخباریه اومده درستش کرد چرا گیر دادی آخر من نمیدونم میشه شیخ چرا اینطوریه؟ بعد در مقابلش میبینی شهید اول در ذکرا بر علیه این رخوابیت چه مطالبی نمیشد، اونا رو بنویس اختلاف ما رو با اونها نمودارش کن نه که بیایی با اخباری این اختلافاتو بازش کنی و روح دیگران میکشنی ما با اینا دیگه الان اختلافی نداریم به خاطر اینکه اخباریت منتعی شد بر لامه مجلسی درست شد دیگه مشکلی با اینها نداریم حالا بعد ماده قریبه حس نمی حرفایی زده تمام شد دیگه اینا اومدن تلتیفش کردن محدث بهرانی تلتیفش کرده نهایتش هم اندامه مجلسین رو درستش کرد بعدا هم شد به اخباریانه که دیگه خیلی خیلی مستقیم شده بودن که الان هم موجودن دیگه مشکلی ما نداریم با اخباری و اینا هم حرف بدی نمیزنن که اینها میگن اخباری حالا الان میگن نه اخبار گرایی باشه اخبار گری نشه ما اخبار رو احادیث رو یه مقدار درش تعمل کنیم که بفهمیم که اعربو کلامنا انا نهنو قومون فسها مجتبین اینطور قاعدم یعنی این مقدار مستدلش کنیم از کلمات اینهای سیدهایی رو استمادش کنیم حالا من علاق الله نمیدونم از سرابادی کدوم شدارمیم من جدیل از سرابادی که نبودم باستنی که اینو تو چیو؟ محدث برانی ترکیب شده ببین مشک محدث برانی در هدایه ترکیب اخبارگری بداشت و خیلی بیشترده. من خوب بیشترده واقعا خوب بیشترده یک جمعوی هم درش نیست خوش خوب خوب خودش نمیشون و که اون مقدمه هدایه رو که نداریم در مقدمه اصول خودشون رو ذهبی کرده که در این مواهی میخواد خود خود هدایه کتاب خوبیه و خوب پیشترده واقعا کتاب خوبیه اگه اون نبود خیلی از روایات رو ما معانی رو و رو نمیدونستیم اینا هم یه نعمتی بود خدا داده به ما ها یعنی خدا یه نعمتی در یه برهی از زمان داد به مکتب که اینا رو آوردن به تفسیر روایات ما. به نحوی که خیلی از چیزا فهمیده شد یکی دباییت رو مثل ده تا برای تفسیر میاره مدرسه برنان که ما خودمون بودیم و ده تا تفسیر رو نمیده حالا علاقه کلها کار روی اینها نداریم اونقدر کارهای عمده داریم قطعه نمانش ازاله منظم مقدمت اقلیت باطله مقدمات باطله وقتی میاد بسن محسله ترتب که میاد گروهات فقی به هم مسئله اجتماع امرو نه وقتی میاد فروات و به هم میدید اجتماع امرو نه میاد میگه شما نماز موقع رفتن هم که داری میخونی داری حرام هنجان بس چیکار کنیم اینجا بمونی میگه حرام هم. داره میره میگه حرام پروازم خب پرواز که نمیتونه بکنه چی کار کنیم این شخص اومده در جای بزبی ولو به سو اختیاران هم داره میره دیگه داره میره شما ها یعنی پا بذاری حرام؟ هم. یه خدا میدونه داره میره بیرون از این نماز نمیخواد بخونه، به شما چه میگن نه اوه اجتماع رنگینه داره آرام انجام میده مشکل اصلی اساس و اگینها نبود واقعا فکر ما اینطور نمیشود الان متورم شده دیگه اصول رو متورزمش کردن بحث ترتب بحث اجتماع امرونه، نه بحث استثاب عدم ازلی بحث لباس مشکول تمام اینها این, این عمرها تلف کرده و چه نتیجه داره؟ نتیجهش خیلی کمه چون از همه اینها که این پنج شیش سال یک نفر به یه چیزی رو استحصال کنه یه قوه اجتماعاتی پیدا کنه خیلی کم پیدا میشه همه خسته میشن دیگه چونت وقت بذاریم اجتماع امرونه نه رو بخونیم مقدمه واضح رو بخونیم این همه بحث در مقدر نواجه واقعیت داره یعنی قبلا که نبود اینها در کلمات قبلی ها نبود اونها فقیح نبوده شهید اول کنار نداشت فقیح نبوده این همه تسلطش در ذکر از کجاست بس؟ خدا میدونه ذکر یکی از کتب آسمانی اونقدر توش مطالب هست با اینکه این همه هم اصول برایش متورم نبود فقیه بودن قبل از اینکه اصول به این مرحله برسه و من از موزهات نمازگRNA انل مشایین اد و الهمم تایید بداحت میکنن آقا این مطلب بدیهیه الان در اصول دیدید بعضی از قاعده به صحیحی میشن چرا آقا تبادل اونجیه قاعده به اعم میشه دلیلشون اولین دلیلشون تبادله اون رو تبادل خلاصه با شماست یا با اونهاست این تبادر چیه؟ غیر از برداشت برداشت من اینه برداشت شما پس همه چیز برمیگرده به نظر خود ما نظر خود ما از کجا نشد میگیره از تربیت ما از خوندن ما از مشیه ما از زندگی خصوصی ما از جامعه ما از اینا نشد میگیره هر کسی هر جا پرورش پیدا کنه افکارش هم مثل خودش میشه کلون یعمل و علا مبنا میگن به اینها که خبیه هم بگیم نه طبق مبنا دارم میگن این میگه و این خوبه اون یکی میگه اون یکی مبنا اون متبادله یا این متبادله یکی ادعای اتراد در این معنا میکنه یکی ادعای اتراد در مقابلش اینها در معالم دیدید دیگه پس همه چیز برمیگرده به نظر یک شر حالا وقتی بناس به نظر یک نفر برگرده نظر مهم باشه نظر رو خوب پس کنه در یک جادهی مستقیمی باشه و با انسان و اینکه بخار مشخوفه به افراط و تفرید بشه خراب میشه مشایین ادعای به دارند در تفریق یک آب گوزه به دو کوزه گفتن ادامون لشخصه و اهداسون لشخصه این آخره و علاها زهل مقدمه و اثبات الهیولا و هیولا چیه؟ ماده اولیه جهان خلقت. یعنی همه چیز می به این هیولا اگه این هیولا نباشه نمیشه این هیولاست که مبدع خلقت عقل اول شد بعد اون عقل دوم را فرید بعد اون عقل سوم را فرید بعد عقل چهارم، عقل که به ده تار سید تلیجه کامده بعد شروع کردن فلک سازی. درست کردن یه نقطه هم فلک درست کردن دیگه دهتا نشد چرا نشد من نمیدونم حالا دهتا فلک درست میکردن چی میشود؟ این عقل آشر چون عقل ها دیشتر که خاطنسید توسیه این عقل آشره اینها چرا نقطه فلک درست کرد حالا دهتا درست میکرد منظم باشه مرتب باشه این نه فلک اومدن قدم های سمانیه رو درست کردن هشت ها قدیم قائل اینا به سوال نیست که چرا اینطور قاعد میشن بعد این خدایی که اینها دارن میگن همون خدایی که قرآن داره میگه اینه واقعا مدبر اومر امور و اینها دارای حیات هم این فلک دارای حیات جزء مزهکات امروز نیست آدم بیاد این رو بزنه کدوم علم ثابت کرده که افلاک دارای حیات هم شعف در شفا داره که این سماعه حیوان مطیع لله تبارک وقت حالی دارای حیات این چطور اثبات کرده؟ الان که هنوز اثبات نشده که دارای حیات حیوانی باشه نه حیات جمادی یا نباتی دارای حیات حیوانی باشه و کدوم دستگاه افنی اثبات کرده؟ خب این رو شما قبول میکنید خودیشون یقین دارن ولی ما یقین نداریم حالا حیولا چیه؟ حیولا ماده و قابلیته چون جواهر رو قاید هم اینکه پنج قسمه جوهر اقلانی، جوهر نفسانی و جوهر جسمانی جوهر ماده و جوهر صورت اقل و نفس که دارای تجربه یا مطلقا مثل اقل هم ذاتن تجربه هم فیلم یعنی در فعدش نیاز به ماده ندارد عقل بخواد کاری بکنه نیاز به دست و صورت نداره نیاز به پا نداره در فعیدش مجرده ولی نفس تجربتش که جمله است یعنی در ذاتش دارای تجربته مثل فهر فهر دارای تجربته نفس ناطقه انسانم دارای تجربت ذاتیه منطقه در فعل نیاز به ماده داره این نفس ناطقه بخواد کاری بکنه اعضا و جواره و اینها رو میخواد. اگه نباشه نمیشه نظام فیزیان میگن دارای تجربه برخلاف روایات که از روح لطیف لکیفون رقیف روح همون نفس ناطق است بعد جوهر جسمانی که هیچ تجربه نداره نه ذاتن نه فعلا این جسم از چی تشکیل میشه یک ای داره و یک صورتی صورتش هم صورتهایی که ما داریم میبینیم صورت آب، صورت دیوار، صورت انسان، صورت کتاب، صورت همه چیز که داریم میبینیم مخصوص این ها صورته این صورت بر یک قالب قابلی افتاده که میگن ماده یا هیولا، چون این اتاق قابلیت فضا داشت که این اتاق درش واقع بشه، این اتاق در این فضا واقع شد و الا اگه قابلیت نداشت این اتاق در این فضا واقع نمیشه. تا قابلیت باشه صورت میگیره قابلیت نباشه صورت نمیگیره اینطوریه از بافت های فلسفه ما هم نمیریم عین همین این تا آخر اصفارم گریم بدی معلوم نیست اینطور نشه شما خیال کنید اونا را دم بخونه به چیزی میده تا الله تباتوی شد به اینکه منظومه رو نخونن به رو بخونم چون خیلی از اون چیزهای مضرش رو حذف کرد در منظومه موجر به اعتقاد انسانه اعتقاد انسان متزلزل میشه اونها رو حذف کرد در اصفار هم و خیلی چیزا رو حذف کرد اصفار جلدی شده تقریبا جلد نهایه شده علونا که خیلی میپرسند چرا الامینا رو نوشته برای که اونا از دست خارج بشه اونا نمونه و اینکه رو بیاره به اصفار معلوم نیست و آخرش مستقیم بمونه اعتقادش از دست نده ای چیزایی اعتقاد پیدا کنه که واقعیت نداره حالا خود نویسندش اینها معتقد بودند و آخرش هم در استقامت موندن و داره که خدا نکنه نوشته هایی من موجب به انحراف بشه و اگر برخلاف دین و شریعت اینها چیزی نوشته باشم یا گفته باشم به خدا پناه میبرم و امسال اینها از حرفهایی که ملاصد را دارن ازا خودش اعتباد داره و بالاترین شاخصه توسیقش هم توسیقیه که مرمون محدث قومی ادش داره یعنی تعریف و تمجید کرد از مولا سدرا و جوز عرفا و فلاسفه اسلامی خوب میدونه. دوند واقعیتش هم همینه حالا علاقل تقدیم مشایین و اشتاقیین ادعای و دارن هر دو هر دو هر دو هستن کسی نمی بگه شیخ رئیس قائل به اسالت وجوده اون هم مسالت الماغیهیه ولی با تعمل در کتاب های که نوشته از تعلیقاتش گرفته تا نجات و اشارات و شفاوی اصالت ماهوی هم. که تصریح کرد به اصالت ماهوی کرد و بعداً ابن رشد اندلسی در قرد همین نظریه شد که بعداً سر از نظریه ماددگرایی و حسگرایی و مادیگری شد ولی بعداً ما در اواخر عمرش از این نظریه برگشته و اونم احاله داده به کشف و شهود و مشاهدات و ریاضتها و اینها که خدا هدایت همی کرد و از این قول دست کشیدن این ها اصالف ماهوی هم. هر دو در یک مسئله هم ادعای بداحت میکنن نسبت به دو مسئله متضاد یکی میگه هیولا هست یکی میگه نیست اونا که میگن هیولا هست که هست شیخ شاقه که میگه نیست پس چی جایگزینشه خود جس، خود جس قابل این صورت خود مقدار همه کار هست. خود مقدار و خود جس. حالا این این مادگیگری نیست چرا بعدا سر از نور و ظلمت در قابل به نور شده قابل به ظلمت شده اگه اونها رو کسی تحویی برش پیدا بکنه که کرده و اندا سنوییت ظاهر سنوییت البته خود شیخشتا و معتقل به سنویت نیست ولی لازمه حرفش اینه خودشون که مسلمونن و اسلام محضه ارفانی حضوری رو قائلن که اسلام در اینها حضم شده ولی خب اینا در همه چیز قلم زدن غیر از باب اسلام امامت و ولایت همین اینو تقییه نذاشته اینا هر چیزی رو نوشتن ولی غیر از این اینو ننوشتم نه نا یک نه نوشت نه حافظ نوشت نه صحروردی نوشت نه دیگران این تغییه اجازه ندود بشت کردن ایدان خب خیلی طرفداریشم مجبورم پیدا کنم یه کتاب بگم اینا فرانک هستند اختلاف شروع به خاطر همین چیزا و ال موزهات یه موقع یه حرفای انسان می‌زاره مثلا این دل حسین قتل ده دسته این در اون کتاب معروفش داره که این حرفات چیه تعبیرات در رابطه ما ایمام حسین دیگه چیزی دیگه ما نمیشونم قبول کن. وگه این قبول بکنیم که همه بالاتفاق میگن یعنی این کتاب مال خودش قواسم العواسم کتاب نرمیم یعنی کمر شکن کمرش کیو خواسته به شکن مگر اینکه بگید این کتاب مالیشون نیست این قطیرا شما چهار همه رو دیدم. همه رو، همه رو. از همه شما من تمام اینها رو دیروز گفت شبه یاجل مرکو که چیزی نیست. ما اینها رو دیروز از خودم الله صدرا گفتم. خودِ مولا سطرای امروز ما از خود امام دادن برن مراجعه بونن نه عمرشون چون به آخرش چرا علامه فرموده معاد عادات رو نه ما سال با غلاما بودیم با آدم نه چون طرفدارن نمیتونن بگن نمیتون. من خودم فلسفه رو شیعی استادی می‌خوندام که طرفدار صد در صد. الان الله خودتون از این اسلامی چی اگه نه باز نه ما میگیم آقایم برام مطالعه کن ما کسی که تحقیق چرا اونم توهینه به دیگرانه اونم توهینه طلبها ما سر کارمون با افکار طلبه هاست حالا چرا؟ یه بگی آقا مطالعه نمی کنه نمی کنم چی می, بس؟ می, می کنه بس؟ می شه درمیش کردیم می کن یا هیچ مطالعه نمی کدوم قدوم شبه قدوم شبه هراتون جبر و اختیار بس نتونستن حل کنن چرا؟ حالا کلا نه مطالعه می ما نه همه ما به همه احترام قائلیم تیروز هم احترام و همه رو نگه داشتیم الان هم داریم خودم هم اینا رو خوندم قائل هم هستم باید بخونم منطقه واقعیتهایی که یه موقع طلبه خیال نکنه که نه نمیشه ما در فلسفه حتما باید تقلید کنیم حتما باید مادت به صورت باشه. شما بیشتر مطالعه کردیم یا سید جمال الدین خود نه میگم حالا ایشون این حرفشو من دیروز روز در کتاب عربت رو بسکر ممحظ در عرفان شیعه و بزرگترین فیلسوفی که در مصر شروع کرد به تدریس اشارات و شفاق و حکمت متابقی و خاطب اینکه بد داشتن تدریسی میکردن این خودش تدریس کرد که بعدن ممانعت کردن سید جمال حرف بیخود خود نمیزنه دید. یا خود ابن عربی رو در چندین مورد از اسفار مخصوصاً در جلد نهم خودمونلا و در حرفاشو رد کردیم گفته کی گفته؟ بهش نیاز به کود داره کودشیمیای می میخواد. یا ما بیایم بگیم که به جهنم آخرش برمیگرده میشه بهشت برای اهلش. این حرفان نیست. خب خودمونلا ساده دلالی کنه. ما همینی گفتیم در همین هست. و الّا کسی خطوحات رو دیگر کتاب ها رو نخونه که نمیتونه نظر بده بخونن تلبه ها بخونن طلبه فکرش باز بشه ما نیاز به اشخاصی مثل امام مثل سید جمال الدین از مثل خیلی داریم و خدا میدونه حوزه جاش خالی الان این افکار نیست بذار تلبه بخونن چرا جه میگیری؟ من تمام هممگم تلبه رو بیارم به کتاب کنیم سار همه ه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اونم می دونی من هم اون اونم منم به جای اونها باشم نمیتونم بیشتر از این برنامه بریزم بیشتر از این نمیشه چون ده درصد از طلبه ها استعداد رو دارن بقیه هنوز استعداد پیدا نکردن چیکار کنم بیان بگن این نخون چی رو الان بدی نهایه رو ما بگیم از اینها برداری نجات فنی سینا رو تدریس کنید به همه خوب نجات استاد نداره اینا هر هرچی خود علامه تدریس کرده معلومه چی داره میگه نجات استاد نداره، اشارات استاد نداره. حکمت و اشراق استاد نداره. چیکار کنیم؟ ولی راه هم بسته نیست، هر کسی میتونه خودش مطالعه کنه، خودش بحث کنه. راه بازه. هر کی دلش برهstudent پیداوش، پیدا میشن این راه رو میرن الان خود این بزرگان فلاسفه اینها خوب تدریس های اینطوری که نبوده هر کسی خونده و به یک قمهی رسیده دیگه ولی باید فکتا باز باشه اینطور نباشه که بگیم نه همینه شما در فروات فقهی اشتال بگیرید ولی در فلسفه تقلیب کنید اینو ما نمیتونیم بگیم بلان خود مرحوم های برو فرموده بودن علامه تبا شفا رو تدریس کنه ولی اسفار رو تدریس نکنه به این شفا حالا خیلی از مطالبش منطقی اینا اشکال نه. ولی به مباحث اعتقادی برسه اعتقادها رو ما نمیتونیم یه دفعه حفظ کنیم اعتقاد میره به طرف ما دیگری دست ما نیست ما هم قرار زمانی که مطالعه کنه در چون دیگه ببین بعضی از نوادان اون قابلیت قابل نیست طلبه اون مرحله نرسیده که هنوز با اصالت وجود رو اصالت ماهیت رو درک کنه واقعا قابل هضم نیست قابل هضم بود که تا الان درش تشکیک نبود ما نمی‌تونیم این وجود خارجی رو ماهیتش کدوم وجودش کدومه. ما چیو داریم الان میبینیم در خارج سخت دیگه از مسائل سخت ولی خب در افکار طلبه ها من اعتقادم اینه خیلی زهن ها بازه اگه بگی ده تا کتاب رو بدونن میرن مطالعه میکنن رو میارن به اون کتاب ها میخونن میخونن بعد هر نتیجه خودشون میرفتن هر کسی هم به هر نظری برسه محترم ما نمیگیم نه شما چرا به این نتیجه رسید؟ در رابطه با ابن عربی هم میگه همیشه اختلاف بود الان است. کتاب در شعر در متع اهلوید داره خوب خیلی هم داره شافعی هم دلیل نمیشه. در این این کتاب نوشته این خیلی از مطالبش برای اهل خودشون هم درست نیست. من دیروز مطلبی از خاجویی آوردم. ملا اسماعیل خاجویی که در اوصافش همه مترجمین نوشتن. مستجاب و بود. ما داریم عالم اینطوری در شیعه غیر از چند نفر که یکی شیشونه مولا اسمایل خازوی یک کتابی داره از رساید الفقهیه و یک رساله های در و موسیقی جمعآوری شده اخیرا که این پنجز یک طرف اون رساله خازویه میفتره چقدر در فقه بوده بعد یه کتاب دیگه داره عقل وسائل اعتقادیه در اون عقل الاعتقادیه اعتقادیه اومده حرفای ابن عربی رو رد کرده خب این شخص مستجاب و دعوه است محاصرم هست 150 سال بعد از ملا ست راست خب حرف ما قبول نکنیم که ما بیم بگیم من از خدا نخواستم امام زمان منو به من معرفی کنه و ایلگه میخواستم معرفی میکرد خب چرا نخواستی؟ ما به هیچ احدی از بزرگان عرفان و فلاسفه توهین نمی کنیم ولی دارن میگم برن بخونن شما احنا متعالید از وسائل اعتقادیشون رو بخونید فرشته خواب دارن یا ندارن خب ایشون اینجا اثبات کرده که فرشته ها چه نوع خوابی دارن و کاملا عرفانی، عقلی بدور از خیلی از چیزهایی که ما نمیتونیم تسبب کنیم و خیلی از مسائل دیگه خب اینه بزرگان دین دیگه ما اگه بناباش نه علامه خاجویی اشتباه میکنه خب از کجا مرمون ما اشتباه نکنه؟ آره همیشه اجازه بریم طلب مطالعه کنه. شما طلبه درسگونی هست بزار طلبه مطالعه کنن افکار رو نبندیم بمبست درست کردن برای فکر طلبه یعنی کشتن طلبه به طلبه بگی نه همین از من قبول کن دیگه قبول نکن از کسی چیز دیگر رو. یا شما تقلید محض داشته باش در اصالتون وجود به خاطر اینکه حاجی میگه نا الوجود این اصیل و دلیل و من خالفنا علیل و اینها دیگه بقیه رو قبول لکن. نه شاید شما سر از اصالتون ماهیه داره برده. یا هر دو اصیله که یفته یکیش اصیل باشه هر دو اصیله به خاطر اینکه اصالت به معنی واقعیتی دیگه. به معنای حقیقت نیست به معنای واقعیت اگه واقعیت اگ چرا واقعیت نداره؟ اگر حقیقت بود میگفتیم آره حقیقت یه چیز باید باشه ولی مراد از اصالت واقعیت خیلی از چیزا واقعیت داره ولی حقیقت نداره اگر معنای اصالت واقعیت هر دو اصیده ماهیات اصیده حالا شما بگید اصالت روزی اشکال نداره نظر هر شخصی برای خودش محترمه ولی بومبست فکری برای کسی درست نکنه بذاریم مطالعه کنه. طلب رو بیارن به خوندن کتاب ها, ها. استادش هم پیدا میشه راهش پیدا میشه آخرش هم که هدایت انسانها دست خداست. دیگه. و النا ما بیام بگیم نه آقا, آقا این اشتباه میکنن ابن سینا درست میدید و از کجا ما ماتی نمیدونیم مینام بعد اشتراقین ادوال بدوحت فی انه لیس ادامند الشخص الاول و ان من عدمت صفه من و بهوال اتصار این حربه دو تایب دوحت داره حالا کدومش رو من قبول بکنم خب اختلاف از این بالاتر تا که حربه دو تایب دوحت بکنم در از این مقدمه قائل شده میگه این تمسک نو به کلامهم علیه السلام فقط او من الخطر این تمسک نو به قیدهم لم نقسم انه انتها کلامش و المصطفاد من کلامهی من الابول الالاخر ادم و جیت ادراکات الارفی غیر محسوسات و در غیر ضروریات تقلیم و ماتکون مبادعه و قریب من الاساس سه قسم رو جدا کرد در اینها عرف و داره یکی اینکه که قریب به حس باشه یکی که حسی باشه یکم ضروریات اقلیم که دیگه لازم نبود بگیم سه قسم رو استثناء کرد اینا قایله به حجیت عقل در این سه قسم یعنی محسوس زر... ضروری و قریب به حسن ولی تمام چیزهایی که بعید از باشه یعنی اون چیزی که مترکب میشه بر اشکال بر کشف و شهود امسال اینها ردش کرد حال اینها در وادی استمباد اینطور داره میده و انده به مسائل اعتبادی چه اعتباد نده اگه کسی از این عقیصه کشف بکنه یا درخ بکنه عقلن مسائل اعتقادی رو برا خود شد شد ولی نسبت به استنبات فروات شرعی میگو چیت نداره یعنی نهایت اختلاف افکاری با اصولی در اون عدله استنبات احکامه ویلا مشکل کلامی باهم هم بگیرن و قدسته او آزکرهو قیواهد من, من تأخر انهو من الاخباری من هم از خید المحدث و جزائری فی اوائل شرح تحضیب علامه هکیان قال بعد ذکر کلام المحدث المتقدم به طولهی بعد این کلام طولانی هم نستر آباد را آورد و نقل کرده فرموده و تحقیق المقامیق تزیم آزه و علی یعنی همینطور بگی اقلیات از شرعیات باید جدا بشه در استنباط احکام اقلیات راه نده. اینم گفت قد ازل تلعقلعن الحكم فل الاصول و الفروع معن شما با این حرف اومدی اقل کلا کنار گذاشتی دیگه عقل کی نه در روایات گفته رسول باطنه شما این عقل رو کنار گذاشتی جوابش چیه فعل یبال العقل حکم فی مساله من المسائل این همه مساله اعتقادی و اصلی با چی اثبات میشه برای آنهای که کتاب سنت رو قائل نیستند. اونا خب اصولی این جواب دادن به ما عقل درس واقع در سلسله علال احکام رو قبول داریم عقل واقع در سلسله معلولات احکام رو هم قبول داریم این نمرب در اون عقل معارض کتاب سنت که در عرض کتاب سنت بخوا چیزی اثبات رو همینی دارن میگن و الا عقل اصلی رو که در احکام باشه مثبت توحید باشه مثبت رسالت باشه خاتمیت باشه امامت بلا فصل باشه اینا رو که کسی نرس نمیکنه. خود اصولی این خود اخباری اینها رو قایلن در اصول کافی در کتاب عقل و جهلش هم همین را رو آورده مطلقی هم منتها اینها کجا و هیولا و صورت کجا تمام اختلافات این، این حیولا و صورت چیه اینها اگه تونستن اثبات بکنن به اینکه؟ انسان با چه صورتی عذاب میشه انسان موقعی که گناه کرده با این صورت بوده 20 ساله بوده وقتی میخواد اقاب بشه با کدوم صورت میخواد اقاب بشه چطوری میشه جمع کرد خب خود مллаزتا میگه ما نمیتونیم تشخیص بدیم ما واقعا نمیتونیم لذا فاعل به یک معاد مثالی شده معاد مثالی یعنی ما نمیتونیم اینجا تشخیص بدیم با کدوم بدن شخص میخونه عذابش کنه یا دیگر شبهات چه شبهه آکر و محکول و شبهات قویتر از اون, اون که دیگه شبههی نیست قویتر از اونش رو خودشون گفتن باید برگردیم به برگردیم بسیارون باید اصول کافی رو شرحشون و ما از شرح اصول کافی ملاستداز چقدر تمجید کردیم اینا آدم شما ملاحظه بکن بهترین شرح اصول کافی میدونن بعد یک مقدار برای پیشرفت انسان سعیه 100 باید داشته باشه سعیه 100 خیلی خوبه ما زود از پوره در نریم بگیم نه آقای نه اون یکی درست هیچ معلوم شاید هر من باطله شاید هر جمعه دیگرم باطله ما که نمیدونیم نه به جزم برش نظر شما محترم ولی شما از ای بذارتن بوزه شما استفاده کنند چرا الان سید جمال دین اصدوادی مونده و بقیه مردن به خاطر اینکه سهی سر داشت بزرگترین استاد فلسفه حکمت مطالیه است و ده خب این زوایاش مبهم مونده ارفانش در بالاترین مراتب ارفان نظری و عملی از بهترین شاگردان ملازنگوله همدانینه ولی مستور مونده و شاید همون چیز که باعث شد غرب و شرب و به هم ریخ به خاطر فان عملی به خاطر علم شه به خاطر ثواد شه سعی صد خیلی مهم علم نشده لگه الان امام اگه سعی صد نداشت نمیشد خدا خیلی از فقها ها نداشتن یادنها نمیشه در مقابلی حکومت جبار میخوای بیستیم نمیشه محال عقلی میدونستن با اینکه که به فلسفه نبودن ولی امام ایستاده یکی ای سعی صدره سعی صدر خیلی مهمه آقای دنبالش باشند و پیدا کنند. اگر کسی سعی صدر نداشته باشه یا دنبال پیدا کردنش نباشه به بومبس میخاره و یک جمله تعریفی است که انسان ها و مردان بزرگ هیچ موقع به بمبست نمی به خاطر اینکه یا راهی می یا راهی می سازند. معنا نداره. تقلیدط معنا نداره تقلید کشتن افکار و فکر کیو؟ فکر طلببه رو ما ذخیره غیر از اینها داریم؟ الان با تمام زویولاتی که وهابیت داره که خیلی مرموز معلوم نیست بیش از هفت میلیون این ها فقط تو پاکستان دارن تربیت میکنن در مقابل اینها انسانهای انسان خبیز زشت و ماکیاویلی در مقابل اینها ما چند تا طلبه داریم با تمام جامعه و زرهای نحساب کنیم دویست هزارت ها نمیشه بنابراین تمام طلبه های دیویز هزارتا یا خلاصش اش هزارتا اینا همه هم بشن امام باز کم خدا میدونه حجم خیلی زیاده ما خیال نگیم یه در سایل مکاسب داریم میخونیم فردا میگیم یه درآمد یه حقوق یه چیزی درست میشه ما و صورت مشکل هم نمیکنه مشکل چیزی حل میکنه که فکر باشه فکره که مشکل رو هم میکنه به هرده کسی بی فکر باشه که اصلا الان این نظام نبود این امنیت نبود چیزی نبود فکر که هد میکنه هیچی ما غیر از فکر نمیکنیم. در مقابل هجمه عظیم وهابیت سحیونیست و تمام که مخالف انسانیت هم. در مقابل اونها فقط همین طلبه ها غیر از این طلبه ها بازاری ها دنبال بازارشون و مردم عوام هم دنبال زندگی حیوانی خودشون هم. فقط این طلبه ها میمونه. برای این طلبه ها رو اگر رسوندیم به مرحله ای که به جمال الدین اصدوابادی رسید، موفقیم و الا باید بشینیم برای حوزه ها خون گریه کنیم. که نداریم طرفادی. بعد از مرحوم آیت فاضل یه بار در افتتاهمون مرکز فقی من از خودش شنیدم فرمود که حالا شاید نوارش علان باشه. فرمود ما در زمان طغوت یک متحری داشتیم. و گفتیم در زمان یاقوت صدها متحری میاد ولی متاسفانه یکی هم نمید این حرف آقای فاضل در مقام خطابه اینکه واقعا الان همه طلباء باید متحری میشدن چرا نشده؟ متحری تعبیراتش الان در کتاباش نگاه کنید میگه بافتهای فلاسفه من اینا رو نمیگم بخاطری در شعن متحری نیستم من اون میتونه بگه دیگران هم بگن ولی ما نگفتیم بذار همه ی بشن متحری تا پرکی کمبر استعمارو بشکنه دیگر بیلی دا نمیشه جما میستفاده که از کلمات تسل افزه میکنی ها انتقادت اشکال ما راول داریم ما اونطا خیلیش احساس حالت است خلاص داره مثلا دیروز مثلا دیروز, دیروز مثلا فهمیدید که از و بلاغه که سراغ قرآن آدم بر اینها خودش هم یه است که قرآنو درم قالب فلسفه داره که نه مثلا مقابل هم نیستن مثلا فلسفه‌ها الان در این حدش که ابزار برای فهم قرآنو چون که عربی ابزار برای فهم قرآنه تا که می‌خوایم مقابله هم دیگه قرار بدیم فلسفه در مقابل قرآن هست حکمت در مقابل قرآن هست اونها فلسفه اگه بشه حکمت دیگه واقعا ممکن متعادل باشه از جایی داش بخونن بشه در که مثلا استناد به از امام میکنید اینا خب خو امام خودش تعجیز فرضیه داشته تو کتاب چهل و حدیث 1304ش میگن که در مورد ببین اولو مختلف هم نظرش میذاره علاوه بر که اول که مقلد باشه خدا خود, خود همون آیه که فرمودید که میفرمایید که قول رو میشنون و نش انتخاب میکنن همون خود آیه داره که اولوالالب اینجوریه این خاطید اول الالباله که خب خاص که نشود مقلد باشیم در هنوز که نشود نمیشه یعنی از زندگی میشه خب وارد بشیم نه الان بهترین نظری برای تشکیل ذهن فعال بر طرف خدا هنوز من این کنا فلسفه من شما پر ذهن من اشکال تیک میکنید که من نمیفهمم جنون واستهیه نظر شما یه موقع در حد انتقادی شما, شما رد میکنید یا فلسفه شما این فلسفه بافتنی گمراه کننده داره اینجوری میگه ما میگه مثلا انتقاد اشکاله من قبول این قبول داریم انتقاد بزنید که بخواهید شما کلا رد کنید که فلسفه گمراه بافتنی کننده بافتنیه شما درستین یا اینکه شما تا اختلاف از باشه آره درستشه یا شما متهم ارزون نیست شما اختلاف بین فلسفه رو یه چیزی میگه که مثلا علم درستابی نیست اینا قدریش اختلافه خود اختلاف دلیل و پیشرفت و تکامل و تکمیل شدن نمیدید خود به خیلی خب الان خود مثلا در تفسیر بعضی آیات مثلا یا همت ایلتون فقراء الله رو مثلا اینشون بحث میکرد با مسئله فلسفی استفاده میکرد چقدر معنیش جذاب میشه و علامه تبا تبایی خواهده بین که من اجتناب کردم از این مسائل فلسفی در تمسیل بیاد خیلی آورده خوب خیلی بحثون فل... عقلی فلسفی داری بحثون روایی بحثون نمید فل... خیلی مقدمه فاق تو مقدمه عزیزان کل از در معاید که من از یهایات مقدارید الان ما بیانیم از در فلسفی خیلی مذکر شدیم اینم بابا یه وقت و خودش تصدیق کرده تصدیق کرده اشتنام میکنم از این فضا نمیارم بعد دلیل من فقط کتابم باشه ضررش تو بیه تصویر قرآن به قرآن کنده اسم فلسفه چی می نه حال فقه اونها نیست اول شو. اول, اول و خالص Oh, me, that is. Madam, you look at him raw, he is not raw. Raw, rahroyla gelen vatandaşlardan rahro'ye nakil yapıldı. Ve bu batırı bulduğu bu yerden başka bir şey yapamadığı için modül şiddetle